<متصفيق> سوری مدستر الرحيم يا المدثر قم فانذر فطهر. الله است اي تو که جام بر خود برخیز و جهانیان را هشدار ده و پروردگارت را به بزرگی یاد کن و جامت را تطهیر کن و از ناپاکی ها هجرت نما هیچگاه منت مگذار و فزون طلب مباش و در راه پروردگارت صبور باش سبور زیرا هنگامی که در سور دمیده شود آن روز روز سختی است و بر کافران آسان نخواهد بود و مرا با کسی که تنهایش آفریدن واگذار. همان کسی که به او مال بسیار دادم و فرزندانی که همواره در خدمت او بودند و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم آنچنان که تمع میکرد تا نعمتها را زیادتر کند هرگز زیرا او دشمن آیات ماست او را مجبور میکنم تا از گله های موفقیت دنیا بالا رود سپس به زیرش میکشانم او برای مخالفت با حق فکر میکند و تر میریزد مرگ بر او که چگونه نقشه میکشد؟ باز مرگ بر او که چگونه نقشه میکشد؟ سپس نگاهی افکند. آنگاه چهره در هم کشید و شتابانه دست به کار شد. بعد به حقیقت پشت کرد و تکبر ورزید و گفت: این قرآن جز جادویی که به او آموختند چیز دیگری نیست. این چیزی جز سخن انسان نیست او را وارد سقر خواهم کرد و تو چه دانی که سقر چیست؟ نه چیزی را باقی میگذارد و نه راهایش می کند سوزاننده پوست است. نونزده فرشته بران نظارت دارند مأموران جهنم را فقط از فرشتگان عذاب قرار دادیم. و تعداد آنها جز برای امتحان اهل کفر نیست تا اهل کتاب یقین کنند و ایمان اهل ایمان افزایش یابند تا نه اهل کتاب و نه اهل ایمان هیچ کدام در حقانیت قرآن شک و تردید به خود راه ندهند و نیز تا کافران و کسانی که در دلهایشان بیماری است نگویند خداوند از بیان چنین مثلی چه چی چیز اراده کرده است آری این اینچنین خداوند هر که را صلاح بداند در گمراهی می‌گذارد و هر که را صلاح بداند به راه نجات هدایت می کند جز او هیچکس شمار لشکریان پروردگارت را نمی‌داند. بدانید بیان این نکات جز پند و اندرزی برای مردم نیست کلا <تصفيق> و صوق نه چون این است قسم به ما و قسم به شب هنگامی که معف می شود و قسم به صلح هنگامی که ظاهر می گردد که قیامت واقعی بزرگی است برای بشر دار است. برای هر کس از شما که پیشا پیش نیکی بفرستد و یا عقب بماند، هر کس در گروه عمل خویش خیش است. مگر گروهی که خوشبقت حقیقی هند. آنها در بهشت از یک دیگر از حال مجرمان که چه چیز شما را به جهنم کشاند؟ جواب دهند به خاطر آن که از نمازگزاران نبودید. و هیچ مسکینی را اطعام نمی‌کردی و با اهل باطل در اوهام خود فرو می‌رفتی و روز قیامت را انکار می‌نمودی تا اینکه مرگمان فرا رسید و چشمانمان به حقیقت باز شد شفاعت شفاعت کنندگان هیچ نفعی برایشان ندارد. آنها را چه شده است که از این پندها روی می گویی آنها گور خرانی رمیده هستند که از شیری درنده فرار می کنند. نه، هر یک از آنها انتظار دارد صحیفه مخصوصی از جانب خدا به او داده شود. هرگز، زیرا آنها از آخرت نمیترسند. این چونی نیست، بدانید که این قرآن پند و اندرز است برای کسی که بخواهد از آن پند گیرد و کسی پند نمی مگر آن که خداوند صلاح بداند او شاگسته این است که حرمتش نگاه دارند همچنان که او شاگسته آمرزش بندگان است و ما یذکرون الا أي... يشهد الله هو أهل وأهل صدق الله العلي خداوند بلند مرتبه